الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله و بعد شبه یکی از شبهاتی که اینجا مطرح شد این بود که ما که اعتقاد نداریم که اون مردمون رزاقه اون مردهمون خالقه ما اعتقاد نداریم جواب پاسخی داد مؤلف پاسخی داد گفت که اون مشرکینی که ام رسول الله باشوت جنگید اونها نمیگفتن که بتامون مردهامون رزاق اونها نمیگفتن میگفتن نمیگفتن ابو جلال ابو لبین ادانه داشت معنی توحید خوب میدونسه بلکه مشرکین خداشناس بودن خدا, خدا رو میشناختن شرک در عبادت داشتن شبهه دوم اینی که ما که اونها رو نهی پرهسیم مرده ما اونا رو واسطه قرار میدیم باصوقی داشت گفت که مشرکین کسانی از اونها ملائکه رو میفرستن اونها هم صالح بودن اونا که نهی فرستیدن اونارو واسطه قرار نمیدن ملائکه کسانی هم پیامبران اگر شما واسطه قرار میدید اونها هم واسطه قرار مینند چه فرقی بین شما و ابراهیم و قوم نوح اونایی که یغوس صدا میزدن اونایی که لات صدا میزدن اونها مشخصه صالح. گفت لات واسطه صالحی نبود فجوش کومک نمی کنه اونا هم صالحی بوده های صالحی بودن که ما نماز می روزه می گیریم میگم خب کفار و مشرکینا روزه می صدقه میدانن تواف میکردن حج می رفتن میرفتن میرفتن به دردشون خودی شبهه ادامه ادامه‌ی همون بحث همین بحث تخربشون و تقاضای شفاعتشون از مرده بحث سیلولانی است فقط این جواب مجمله مفصلش رو حد می شما اینکه میشید به مرده ایفی عمره خدا شفاعتم کن ای فلانی شفاعتم کن شما که شفاعت می طلبید آیا سال اولی که مطرح میشه حالا بعداً ان شاء خواهیم برد آقا اون مرده اصلا صدا شنید آیا میشنبه آیا اون مرده میشنوه می تجابت میکنه خدا در قرآن میگه این نکلت تسمع الموت و ما انت بمسمع ما في تو نمیتونی صدا اون مردگان گان بشنونی برای کی میگه خداوند به رسولات است انک لا تسمع الموت یک اعرابی میمینه یک شخصی شوری را میاندازه در توسل به مردگان يه خدا من در قران گفت والله تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون بل احياء عند ربهم خودا گفتك اونها نه مردن بل احياء عربي في البداية دو تا چي شي زنهش ميواد اين آيه رو ميخونه كامل عند ربهم يرزقون هنا بل احياء عند ربهم فيش خدا ان كي انجا كه زنده نيستن اونجا فيش بعد گفت یرزقون نگفت یرزقون یرزقون خدا بهش روزی میده اگر روز روزی رساب بودن سر چشم فهمیدی بل احیاء عند ربهم یرزقون خدا بهشو روزی میده خب ما از همو خدا میخوام که روزی بهمون برسونه چرا بریم از مرده بخوایم که برام روزی بده کسی که خودش محتاج روزیه چرا بریم درشو بزنیم چرا بریم ازش بخوایم ام ولی که خودش محتاجه محتاج روزیه است یرزقون خودش که محتاجه چرا از اون محتاج بنیم بخوایم این اعرابی میدونه معنی کلام خدا چیه ми дона заохкие ми дони ба рузиаст ки ба талабе мидонин маънаи рузи яни чи рузиро фақат зар фул намедонам имонам рузие тавҳидам рузие инҷо аст ки мо доштим алфараҳу бифазлиллаҳи ва раҳматиҳ рузие ин рузие ҳама кас низ хели аз ин неъмат маҳрума ман юрид аллоҳ бихайран юфаккаҳу фиддин бо доктори фиқх фиқҳ дар тавҳид фаҳм тавҳид кас ё худ хубиятш мехоҳад худа хубиятмон хост ки ما یوره للابی خیرا این فضیلت طلب علم چه نعمت بزرگی است که انسان توفیق و این فضل نصیبش بشه که طالب علم بشه طالب وارث انبیا بشه ان الانبیا لم یورثوا دینما ول دینارا مردم محرومان محرومان از این نعمت از این فضیلات نعمت است نعمت فقه دین فهم دین بصیرت در دین این نشانه خیرخوی خدا نسبت به است خدا خیریتشو خواسته مشروب خاردشه دوز نشه آدم پرست نشه خدا پرست بشه این نعمت بزرگتری نعمت که انسان با درکش بکنه لمسش بکنه شو گذارش بشه و قدر و سپاس اون نعمت رو به جا بیاره نباشه که روز قیامت بیاد و خدا و انگلهای ازش بکنه بگه و ما قدر الله حق قدره قدر خدا رو ندونستن عظمت خدا را به جا نیومردن حق اسماء صفات را به جا نیاوردن، حق عبادت خدا را به جا وردن ما قدر الله حق قدره. چه بارو دش، عذابتش، کبریاش، نه از خدا، خدا نبودن و ما قدر الله حق قدره. کسی که قدر دین را ندونه، کسی که راضی بشه بچش قتال بکنه ولی در راه دین نیاد، کسی که راضی بشه بچه‌اش مشروب بخوره برای در راه دین نیاد، این محرومه. محرومه. محرومه, محرومه اون که بچه‌اش می‌ذاره توی مقاصد بل نظرت که چیزات دینش بیاموزه محرومه انحرمانه خیریات دار اینکه انسان تحقیق دار دین خدا باشه هاینی مولا بشان های بیان درس دینی بخونان بل همه بود درس دینی بخونان طلب العلم فريضة على كل مؤمن طلب علف فريضاس واجبه حدیث رسول الله قال صلی اللهم طلب العلم على كل م بل هر م م م م م م ا ا اگلت چی با جواب خدا به روز قیامت چگونی میخواد وارد بهش بشه کلیدی بهش لا اله الا با چه کلیدی میخواد وارد بهش بشه چطور می‌خواد قرنطینه رد بشه هر مؤمنی هر انسانی هر بشری هر جنی به این کلید نیاز داره و این کلید دندونی داره برای خودش شرط و شروط داره هر کلیدی در بهش رو باز نمی‌کنه این کلید شرط و شروط داره علم می‌خواد یقین می‌خواد اخلاص می‌خواد پایبندی می‌خواد صدق می‌خواد همینطوری نیست فواجبا حال شخصي قل فبطل لله ورحمته فبذلك فليفرحوا لا أفاضك أيضا الخوف العظيم فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما أن الكفار خصوصا ان الهمه الله ما قصاه قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم انهم اتوه قائلين اجعل لنا اله ا كما لهم اله لا يعظم خوفه وحرصه على ما يخلصوا من هذا وامثاله خوف وقتي كي انسان ببينه وبشنو كي خدا ميجي ما انسان اعمال مشركها بامنثورا ميشه وقتي كي بشنو كي خدا ما نبخشي لرا فرعون يقينش سب انسان مراجعه بکنه در خودش رجوع به خودش بکنه فرعون یقین داشت نبخشیده شد ابلیس خدا را قبول داشت حاضر نشد سر به سجده مخلوق بزنه به خالق سجده میکرد ولی محروف شده از رحمت الهی حساب باید کتابی التفه که شیطان اغواش بکنه اغواش بکنه گمراهش بکنه طاش به لفظ این طرز با در وجود انسان باشه قبلا اشاره کردم باز هم اینجا اشاره میکنم شبهه ای که اینجا مطرح میشه شوکرا یکم بازش بکنم. که بحث ترس اینجا، ولی در کنار بحث ترس، یک عمل قلبه. عمل قلبه. از اعمال قلوب ترس، محبت، نه اعمال قلوبه. انسان در دل... انوع عیش شرک شرک در قلبش شرک در اعمال جوارحش در قولش، در زبانش قسم میخوره به غیر خدا. شرکه. زلف میکنه به غیر خدا عمله. ترس میکنه از غیر خدا. اون ترسی که نباید داشته باشه از غیر خدا. شرکه. نه آنوار شرکی فاجوئی که اون قدری که از مخلوق میترسه نه از خالق نمیترسه بهشون میگه قسم بخور به خدا رو حد قسم به دروغ میخوره ولی میگه به امام ولی و فلانی به پیر فلانی به پیر بگو قسم بخور قسم نمیخوره میترسه از اونقدر که از پیر میترسه از خدا نمیترسه قدری که از پیر میترسه از خدا نمیترسه چه چیزی سبب شد که اینقدر که از پیر میترسه از خدا نترسه علت چیه اعلی علات اعتقاد من اعتقاد دارم قدر من اعتقاد دارم تو اون قلب تو اون ولی اعتقاد اعتقاد درتون سید اعتقاد هل دهش اعتقاده سبچشمش باید اونجا اون اعتقاد حل بشه بود اون اعتقاد اصلاح بشه که منجر شده به اینکه این شخص از عمرده و اون ولی و اون سید بتسه از خدا بیشته بود اون اصلاح بشه میگن ما رفتیم پیش اون پیر مریض مو شفا نوبینامو بینا شده فلانی فلان بوده فلانی تو زندان بوده نجاته فلانی حکم اعدامشو ماده وازاد شده میگیم از دو حالت خارج نیست از دو حالت خارج نیست حالت اول اینی که اون استجابه استدعاتی که رخ داده کنار اون قبر کنار اون ولی اون چیزی که شما از اون ولی خاصید جنیان که شنیدن برات برآورده کردن که تو اغوا بشی گمراه بشی فلانی زندانی بود نوشته شده بودن؟ بوده نوشته بوده برایش حکمشو داده بودن که اعدام بشه یه شیاطینیان برگ اعدام و پروندشو می دوزن می رو باین بگه جنیان نیستن که میرو رو باین می دوزن قصه سلیمان خدا برای چی تو قرآن گفت؟ چرا قصه سلیمان و قصه بلقی سرچک اسمش در قرآن نایمده این قصه رو خداوند چرا بیان میکنه؟ چرا بگه جنیان غواصن و جنیان پرواز میکنن؟ برای چی خدا این قصه رو بگه؟ جو حال ما فریب دجالین و کذابین و شربت بازان که ما را فریب میدن چهار تا ملای جادوگر تعدیز نیسته که ما جرابطه داره فریب آنها را نخوریم گول آنها را نخوریم فلانی نمیدونم کشتی غرب میشده لنگشو نمیدونم پاره کرده رفته توی سراخ کشتی گذاشته کشتی غرب نشه میری تو جاست که میشنوی میری تو چابه هار میشنوی میری تو پاکستان دلی و بمبه میلی بار میری از این بر گوده و بسک و خمیر و برو هر جای دنیا میری که قصه یه لونگ و قصه سوراخ سراخ شدن کشتی هست از هم دیگه یاد گرفتم ملاحی صوفی که چطور مردم را فرید بدن به اسم دیم تجارت بکنن بله کشتی وقتی که برگشته دیدین که, بله که توی اون سراخه بوده الله اکبر پیانبر صلی الله علیه وسلم چین قدرتی نداشت که از مکه پرواز مکنه بره مدینه از دست مشرکی نجات بیابه. به اتقض خریتن مشرکن یک خریت یک حالی یک راه شناس و سلا کمک میگیره که راه را بهش تا مکه نشون بده بله اسرا و معراج قبول داشتیم برا خرا خدا فرصد معجزه بود بلیکن وقتی قصه یه هجرت از مکه به مدینه شد اونجا. پیامبر صلی الله علیه و آله مثلا کومال مشرک خدا بهش میگه برو تو غار برو تو غار پناه بجو مشرکین تو رو نبینن چطوره که برای پیامبر صلی الله علیه و چیزی نشد چطور که برای صحابه نشد چطور شد که پیامبر گفت ندونست اموش حمزه شهید میشه و صد اشنریخ گریه نکرد چطوره که ام ملت از غیر میدونه که لنس اونجا غضب میشه ولی پیامبر ندونه که حمزه کشته میشه که نداره اموش کشته بشه الله اکبر چطور که اون مریزد بی برو برگرد میتونه بچه‌تو نجات بده ولی پیامبر ابراهیم بود دستش میمیره پیامبر زنده بود بچه‌اش فوتو تو دستش نتونش نتونست بچهش رو نجات بده تونست. نتونست چرا ما خودمون رو فریب میدیم کی از تو خدا که استجابت بکنه خداست فقط استجابت میکنه با چهار تا دروغ سره مو شیرمالیدن چهار تا خرافات همه این خرافات هم یکی هم مثل هم دیگه پس یا این که به دادش میرتن تا بشریت را گمراه کنن این حالت اول حالت دوبام ارحم الراحمی وقتی که بنده رو ببینه که داره نابود میشه غرق میشه امن ام یجیب المطر اذا دعاه خدا بنده مشرکه فر غرق میشه ولی میگه خدا خدا خدا را به عنوان خالق و مدبر قبول داره وقتی اون قبول داره خدا در رحمتش بازه رحمانه برای همه رحیم برای مؤمنین بر رحمان و رحمانه رحمتش وسعت كل شيء حتی بار مشرک مشرک رو نجات میده نه که مؤمن حتی مشرک رو خدا نجات میده چون خداون مشرک رو نجات داد دلیل بر اینه که ما باید اعتقاد تو اون سید و ولی داشته باشیم چون فلان مشرک رفت کنار فلان قبر اگر قرار باشه که ولی ما ولی ما رفتیم فلان مریض شفا یافت اگر با این ارجط این دلیل کار شما مشروعه کار بودا مشروعه کار حمدوس هم همون دلیلی که اونها میتراشن برای گوابشون برای بوداشون همون دلیل شما میتراشید برای ولیتون سیدتون چه فرقی کرد بین شما و اونها جوابشون فرقی نمیکنه این شبه همون شبه هست این دلیل همون دلیل پس استجابت دعاشون دلیل بر مشروعیت کارشون نیست خدا در قر ومن كفر فامتعه قليلا ثم افره الى عذاب النار وبعث المسير كفي كافر شود فامتعه فومن كفر درسوره بقره ايه 22 و من كفر فامتعه انبع ما تعبش مده رزق و رزي و دنيا و هر شيء خاص بش مده فامتعه كفي كفار و مشركين دنيا دارن آلمان و انگليز و فلان نعمت الدنيا دارن دارن. خدا خواسته که بده امتحانشون بکنه اطلااشون بکنه dele sho khosh دنیا با مال دنیا mal dunya ba na'ib dunya khoda baraye kaferam mide hos na khored va in ham dalil nemishe baraye in ke began mabar haqqi be khatere hami khoda be emu ثم أثره khoda عذاب النار o mo'minesh mide va man kafara